این داستان آهوی جادو شده روزی روزگاری زیر گمبد آبی آسمون برادر و خواهری بودن که خیلی همدیگر رو دوست داشتند. مادر اونها مرده بود و پدرشون زن دیگه گرفته بود نامادری با این برادر و خواهر بسیار بیرحم و نامهربون بود روزی پسر دست خواهرش رو گرفت و گفت خواهر کوچولوی عزیزم، از وقتی مادرمون مرده، ما یه روز خوش هم نداشتیم. مادر ناتنی برای شام نون خشک و بیات به ما میده. کتکمون میزنه و با تهدید میخواد که ما را از خونه بیرون کنه. اون حتی به طول سکا بهتر از ما قضا میده. خدا به ما رحم کنه. اگه مادرمون زنده بود، این گرفتاری ها رو نداشتیم. بیا با هم از اینجا بریم و به دنیای بزرگ پناه ببریم. به این ترتیب اونا از خونه رفتن و تمام روز رو در مزاره و چمنزارها سرگردون بودن تا اینکه شب فرا رسید. دیگه به جنگلی انبوه رسیده بودن که باران هم شروع به باریدن کرد. دخترک به برادرش گفت ببین آسمونم مثل قلبهای ما گریون شده سرانجام بعد از اون که مسافت طولانی رو طی کردن خسته و گرسنه و غمگین به خفره تنه پوک درختی پناه بردن و تا صبح اونجا خوابیدند وقتی بیدار شدن پرتوه درخشان خورشید از لابلای شاخه های درخت به درون خفره درخت میتابید. تابید. اون دوتا برای پیدا کردن آب پناهگاه خودشون رو ترک کردن. پسرک گفت خیلی تشنم. چه خوب بود اگه جوی آبی یا رودخونهای پیدا می کردیم. اون ایستاد و با دقت گوش کرد. بعد به خواهرش گفت صبر کن به نظرم صدای شرشور آب میاد. بعد دست خواهرش رو گرفت و هر دو به طرف آب دویدن. مادر ناتنی این بچه ها جادوگر بدجنسی بود. اون که دیده بود بچه ها دارن فرار میکنن، مثل ماری با احتیاط اونا اونارو تعقیب کرده بود. تمام جویبارها و رودخونه های جنگل رو جادو کرده بود. وقتی بچه ها به جویبار نزدیک شدن، زمزمه شیرین آب رو که از روی سنگریزه ها میگذشت شنیدن. پسرک خم شد تا آب بنوشه، اما خواهرش در همهمه گذر آب صدایی رو شنیده بود که میگفت: هر از آب این جویبار رو بنوشه ببر میشه. خواهر فریاد زد صبر کن این آب آبو نخور صبر کن اگر بخوری تبدیل به جونبری درنده میشی و منو پاره میکنی. برادر با اون که تشنه بود وقتی حرفای خواهرش رو شنید از نوشیدن آب خودداری کرد و گفت خواهر عزیزم صبر میکنم تا به یه چشمه دیگه برسیم. اونا در جستجوی آب به راهشون ادامه دادن و به چشمهی رسیدن. وقتی بهش نزدیک شدن از زمزمه آب این کلمات رو شنیدن. هر کسی آب این چشمه رو بنوشه گرگ میشه. خواهر دوباره گفت برادر مبادا از این آب بخوری که گرگ میشی و منو میبلعی. دوباره برادر خودداری کرد و گفت وقتی به جویبار بعدی رسیدیم من باید آب بخورم. هرچی میخوای بگو تشنمه و دیگه نمیتونم طاقت بیارم. خیلی زود جویبار کوچکی پیدا شد که آبی زلال و شفاف داشت. اونجا هم خواهر کوچیک زمزمه آب رو شنید که میگفت هرکسی از این جویبار آب بنوشه آهو میشه. خواهر دوباره گفت برادر نخور. ولی این بار دیگه دیر شده بود و پسرک کنار جویبار زانو زده بود و داشت آب مینوشید. اولین قطره آب که به لبای پسر خورد اونو به یه بچه آهو تبدیل کرد. خواهر کوچیک برای برادر جادو شدهش چه گریه های که نکرد. بچه آهو هم به گریه افتاد. بچه آهو فرار نکرد و کنار دخترک ماند. دخترک بعد از گریه و زاری گفت آهوی عزیز، مبادا از من دور بشی، من باید ازت مراقبت کنم. دخترک بند تلایی جوراب خودش رو باز کرد و به گردن آهو بست. بعد گشت و چند تا گیاه حسیری پیدا کرد و اونها رو مثل تناب به هم بافت. بعد اونو به حلقه تلایی گردن آهو بست و اونو رها کرد تا به جنگل بره. اون دو بعد از مدتی گشت و گذار به یک کلبه متروک رسیدن. دختر خوشحال شد که سرپناه خوبی پیدا کردن. داخل کلبه رفتن و بعد دخترک تنها بیرون اومد تا کمی خزه و برگ خشک جمع کنه و با اونها جای خواب نرمی برای آهو درست کنه. از اون پس دخترک هر روز از کلبه بیرون میرفت و برای خودش ریشه های خشک و فندق و تمشک و برای آهو علف تازه جمع می کرد. آهو از دست دخترک علف می خورد و همراه او به گشت و گذار می رفت. جست و خیز می کرد و شاد بود. وقتی شب می شد و دخترک احساس خستگی می کرد، زانو می زد و دعاش رو می خوند. سر ظریفش رو پشت آهو که به نرمی بالشت بود می و آرام و آسوده به خواب می رفت. فقط اگر برادرش به این شکل در نیومده بود اون دو در کنار هم چقدر خوشحال بودن. زمان میگذشت و اونا همچنان در کنار هم زندگی میکردند دخترک دیگه بزرگ شده بود و دوشیزه زیبا شده بود. اون بچه آهو هم دیگه آهوی بزرگی شده بود. روز گروه بزرگی از شکارچیان به همراه پادشاه برای شکار به جنگل اومدن. سر و صدای شیپورها پارس سگان و همه همه شکارچیان در جنگل پیچید و به گوش آهو هم رسید اون که دلش میخواست به گروه اونا به پیونده به دخترک گفت به من اجازه بده که شکار و شکارچیان رو ببینم خیلی دلم میخواد نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم اون اونقدر اصرار کرد که دختر با اکراه پذیرفت موقع رفتن دختر بهش گفت: یادت باشه، به خاطر شکارچیایی که از این دور و بر هستند باید درو در قفل کنم. وقتی شب برگشتی و در زدی به شرطی در رو باز میکنم کنم که بگی خواهر کوچولوی عزیز اجازه بده بیام تو. آهو که خیلی دلش میخواست بره و در هوای آزاد نفس بکشه به حرفای دختر چندان توجه نکرد و با عجله رفت. هنوز خیلی راه نرفته بود که چشم سردستی شکارچیان پادشاه به این حیوان زیبا افتاد و شروع کرد به تعقیبش. اما تعقیب حیوان تیزپایی مثل آهو آسون نبود. اون وقتی به جایی رسید که احساس امنیت کرد با پرشی از روی بوته ها از دید شکارچی ها پنهان شد. هوا تقریبا داشت تاریک میشد. آهود دوان دوان خودش رو به کلبه کوچیک رسوند در زد و با فریاد گفت خواهر کوچولوی عزیز اجازه بده بیام تو در بیدرنگ باز شد خواهر از اینکه دوباره آهو رو می دید که سالم در بسترش لم داده خیلی خوشحال بود چند روز بعد بار دیگه شکارچیا به جنگل اومدن. وقتی سر صدای اونها به گوش آهو رسید، دوباره بیقرار شد و با اصرار از خواهرش خواست بذاره بیرون بره. خواهر در رو باز کرد و گفت، باشه برو، امیدوارم وقتی میخوای برگردی سفارشم و فراموش نکنی. این بار رئیس شکارچیا آهوی زیبا رو که حلقه طلایی دور گردنش بود به پادشاه نشون داد و هر دو تصمیم گرفتن اونو شکار کنن. اون دو با جدیت تمام اونو تعقیب میکردن تا شب شد. آهو چابکتر از اون بود که اونا بتونن به گردش برسن ولی تیری که اون دوتا شلی کرده بودند به پای آهو خورده بود. آهو به ناچار در بین بوته ها پنهان شد و بعد از رفتن شکارچی ها لنگان لنگان به طرف خونش براه افتاد. اما یکی از شکارچی ها که اونو تعقیب کرده بود دید که کجا میره؟ شکارچی از اینکه میدید آهو در کلبرو میزنه و با گوش خودش میشنید که آهو میگه خواهر کوچولوی عزیز اجازه بده بیام تو خیلی تعجب کرد. لای در کمی باز بود و زود بسته شد. شکارچی حیرت زده وقتی برگشت هرچی رو که دیده بود برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه گفت: فردا بازم آهو رو می کنیم و این راز رو کشف کنیم. خواهر از دیدن پای خونالود آهو وحشت کرد. اون خیلی زود خونا رو پاک کرد، جای زخم رو شستشو داد و با گیاهای دارویی روش مرهم گذاشت. بعد هم به آهو گفت: آهوی عزیز، باید دراز بکشی. اگر استراحت کنی زود خوب میشی. صبح زخم پای آهو خوب شده بود آهو حتی احساس می کرد از اولش هم سالم تر شده برای همین وقتی سر و صدای شکارچیا رو شنید دوباره بیتاب و بیقرار به خواهرش گفت خواهر عزیزم من یه بار دیگه باید برم گریختن از دست شکارچیا کار آسونیه پامم که خوب شده تازه تا منو نبینن که می دوم خواهرش گریه و زاری کرد و حتی التماس کرد که نره. بعدم گفت اگه تو رو بکشن من تو این جنگل تنها میمونم و تمام عمرم تنها بیکس میشم. آهو گفت اگه فقط سر و صدا رو بشنوم و خودم نرم از دلتنگی میمیرم. سرانجام خواهرش با اکراه اجازه داد و آهو هم شاد و سرحال پرید و از کلبه بیرون رفت. همین که دوباره چشم پادشاه به آهو افتاد، به شکارچی ها دستور داد، اون آهو رو تعقیب کنید ولی بهش صدمه ای نزنین. تمام روز در تعقیب آهو بودن. نزدیک غروب که شد، پادشاه به اون شکارچی که روز پیش به دنبال آهو رفته بود گفت بیا و اون کلبه کوچیک رو به من نشون بده. اونها با هم تا نزدیک کلبه رفتن. بعد پادشاه میر شکار خودش رو برگردوند تا خودش تنها و پیش از ورود آهو به کل ببره. بعد ضربه‌ای به در کوچک نواخت و گفت: خواهر کوچلوگ عزیزم اجازه بده بیام تو. وقتی در باز شد، پادشاه داخل رفت و با شگفتی دختر زیبایی رو دید که هرگز در زندگی زنی به زیبایی او ندیده بود. دختر همچون به جای آهوی کوچی که خودش نجیبزادهی رو میدید که با تاجی زرین وارد کلبه شده وحشت کرد. پادشاه رفتاری دوستانه داشت. بعد از صحبت کوتاه دست دختر رو در دستش گرفت و گفت آیا مایلی با من به قصرم بیایی و همسر من بشی؟ دختر جوون جواب داد با کمال میل حاضرم. بلی نمیتونم بدون آهوم جای برم. اون حتما باید همراه من باشه. پادشاه گفت تا زمانی که تو زنده ای اون با تو میمونه و هرگز از تو نمیخوام که اونو ترک بکنی. وقتی اون دوتا مشغول صحبت بودن آهو دوان دوان از راه رسید. اون سر و قبراغ به نظر میامد. خواهر تناب حسیری رو دور گردنش بست و اونو به چراگاه نزدیک کلبه برد که اسب زیبای پادشاه هم در آنجا مشغول چرا بود. بعد پادشاه دختر را بر اسب سوار کرد و آنها در حالی که آهو در رکابشان بود، راهی قصر شدند. چندان طول نکشید که مراسم عروسی با براشون برگزار شد. آهو در اطراف قصر گشت و گذار می‌کرد. به هر کجا دلش میخواست میرفت و میامد و با آسایش و خوشی روزگار میگذروند حال بشنوین از مادر ناتنی بدجنس او که این همه گرفتاری برای بچههای معصوم درست کرده بود خیال میکرد لابد حیوونای وحشی دختر و و آهو هم شکار شده و از بین رفته وقتی خبر خوشبختی دختر و آسایش آهو به گوشش رسید از حسادت آروم و قرار از دست داد و تصمیم گرفت اونا رو نابود کنه. وقتی ملکه صاحب فرزندی شد اون و دختر زشتش به قصد رفتن و وانمود کردند که یکی از اونها پرستاری میدونه و به این ترتیب بر اون مادر و فرزند مسلط شدند. اونا یه روز ملکه را رو به همون بردن. در همون و قفل کردند و سعی کردند که اونو خفه کنند. پیرزن جادوگرد دخترشو به جای ملکه در رخت خواب خوابوند تا پادشاه متوجه غیبت ملکه نشه. پیرزن به دخترش دستور داد که بذاره پادشاه هرچه دلش میخواد بگه ولی اون حرفی نزنه و ساکت باشه. ملکه از همومی که توش زندانی شده بود گریخت ولی از اونجا دور نشد. چون میخواست مواظب اوضاع فرزندش و آهو باشه. دو شبه پشت سر هم پرستار بچه متوجه شد که شبه ملکه میاد، وارد اتاق میشه، بچه رو بر و از او پرستاری میکنه. مادر ناتنی پیر که از دخترش پرستاری میکرد و سعی میکرد که اونو جای همسر پادشاه جا بزنه، به پادشاه گفته بود که زنش مریضه و نمیتونه از اتاق بیرون بیاد پادشاه از این حرف به فکر فرو رفت و به خودش گفت مگه دو تا ملکه داریم پس اون که هر شب از کودک نگهداری میکنه کیه؟ بعد فکر کرد من امشب کشیک میدم تا سردر بیارم همین که شبه وارد اتاق شد و بچه رو بغل گرفت پادشاه اونو شناخت و در آغوش گرفت و گفت تو همسر محبوب من هستی زیباتر از همیشه جادوگر رزل اونو بیهوش کرده بود و در حمام انداخته بود به این امید که تلف بشه و پادشاه با دخترش ازدواج کنه وقتی پادشاه با همسرش صحبت کرد تلسک شکست و ملکه برای پادشاه شهر داد که او چه مادر ناتنی بی رحمی بوده پادشاه سخت عصبانی شد و دستور داد اون مادر و دختر رو در دادگاه محاکمه کنن. هر دوی اونا به مرگ محکوم شدن. حکم این بود که دختر تومه حیوانات درنده بشه و مادر زنده در آتش بسوزه. وقتی پیرزن جادوگر در آتش میسوخت و خاکستر میشد، تلسم برادر ملک هم شکست. و او از یک آهو به یک جوان زیبا و خوشیما مبدل شد از اون پس برادر و خواهر تا آخر عمر در آسایش و آرامش زندگی کردند